در یک عصر دلنشین خوردادی من آرش این افتخار را دارم که همراه شما باشم با دومین برنامه از فصل یکم هجده با بابوی تکه تکه های ساعت مچی زنگوله دارم انتظارش نداشتم. نداشته انتظاری چی رو نداشتی؟ چیزی شده مگه؟ اینکه اینقدر سخت باشه آراش میشه تنظیم بدی قشنگ؟ چی دقیقا سخته؟ پرسادن از انتظار تو انتظارش رو داشتی؟ راستی انتظار چه بویی داره؟ مم... باید بهش فکر کنم اگه هفت دقیقه منتظر مترو بودی یا سیزده دقیقه منتظر اتوبوس؟ شاید 46 دقیقه منتظر استاد بودی؟ و یا 13 سال منتظری برگرده پس خوب میتونی بوی این ساعتها رو حس کنی و همراه 18 بنفش امروز باشی من به اتفاق کامران روژین با شما خواهیم بود در سی دقیقه آینده با منتظرت بودم منتظرم باش بدتر این چیز عالم وا اینه که صبح ازخوااببیدارید و تر از اون اینه که باید زود بیدارشی حالا اینا رو بیخیار بدتر از همه اینا اینه که دیر بیدار شده باشی باید میرفتی سر یه قرار ملاقات کاری مصاحبه استخدام، کنفرانس دانشگاه محل کارت باید دوش بگیرید توی لباسات بگردی دنبال اونی که اغش صابتره آسترش چرک نیست اگه مردی صورتتو اصلاح کنین اگه زنی به خودت بررسید اگه مادری چای دم کنی اگه پدری که مگه هنوز خونه‌ای بعد تا الان رفته باشه بیرون اون سنگی که میگن یه لقمه نون زیرش رو پیدا کرده باشی تازه باید خیلی خوششانس باشی که دیشب که خواب بودی اتفاقی نیفتاده باشه مثلا کسی عوض نکرده باشه که راجب تو فیسبوک کلی بد و بیراه بگه یا تو یه جمع مثلا دوستانه پتت رو رواب نریخته باشه تازه باید به خودت بقبولونی که اصن هیچ اتفاقی نیفتاده. تا دستکم برای اتفاقاتی که احتمالا افتاده، هم دست خودت نبوده باشه. با دکمه پیرن باز یا کفشای سرپا و احتمالا یه لغم نون که وسطش پنیر گذاشتی یا نزاشتی، بودوبودو بودو در خونه رو باز میکنی و فکر میکنی داری وارد شهر میشی. انگار که تا الان یه آدم پنهون، یه مأمور سرویس مخفی یا یه مجرم سابقه داره تحت تعقیب بودی و حالا خودتو آشکار کردی. فکر کنی نمردی و و کسی هم تو نیست. اون نیم ساعت که طول میکشه به ایستگاه اتوبوس برسی باید جواب سلام اباس آقا بقل و سمد آقای و سندقای نوایی رو بدی یا وحشت زده و تا حد زیادی مخفیانه قدم برداری که هیچ از اینا نبینند مثل وحشت از گولله که تو رو نشون گرفته باشه مثلا یکی پیدا بشه بیا تو این هاگیر واگیر روه به کنکور هش ازت بپرسه آیا همسایتون اون بگیره راجب اینکه چرا زن نگرفتی گرفتی کنه و انتقام تکننی شدن بنزینو و اول وحشت و هراس از انتقام به قدمات شتاب میده. به خودت که می میبینی تو ایستگاه اتوبوسی و خودتو برنداز میکنی که بفهمی هنوز زنده یا نه. مرد مسینی چنان از شدت سرما صرفه میکنه که انگار صد سال آفتاب ندیده یه کوچولوی دبستانی هم دستاشو گرفته جلو دهنش که با ها کردن گرمشون نگه داره. مرد مسمن طوری ننگات میکنه که باید کمکش کنی که سوار اتوبوس بشه. بعدش هم نوبت بچه دبستانی است. اوه نه الان قد رفتا با میدونین سوار اتوبوس میشین هیچ کدوم هم رو نمی شناسی. ولی دوست داری از تک تکشون بخوای که موقع پیاده شدن تو ایسکا لفتش ندارن که زود برسی سر کارت. هوا سرده ولی تو عرق می کنی تو نگاه می کنی ولی میبینی ساعت رو یادت رفته بیاری. موبایلت اونو که دیشب نزدی بشاش مسافر که کنارت نشسته ننشستی که. صندلی گیلت بود خب از اونی که کنارت سر با وایس میگی ببخشید ساعت چنده؟ قیاقه‌ت شبیه هایی شده که هم مرگ برگشتن. از مرگ برگشتی که عکس قاب بگیری یا حلقه ازدواج رو از عکسات پاک کنی. برگشتی که موقع سوار شدن با اتوبوس به مرد محسنی که میخواد سوار بشه تنه بزنی تا این صندلی گیرت بهت بشینی. از مرگ برگشتی واسه چی؟ که زود برسی سر قرار مهمت و این وسط رو خراب کنی؟ برگشتی تا تلخ ترین بوساتو بگیری ولی شیرین ترین حرفاتو نزنی تو تخت خوابت از عشق حرف بزنی بعد ببینی تو تخت خواب دیگه ای مردی معشوقه یکی دیگر رو میدوزیدی ولی باز کسی نیست در آغوشش بگیری و اطرافت نگاه میکنی خودتو گم کردی و میونه انبوه اخباری که از قتل و تجاوز و اعدام اینا پیدا میکنی شاعرای میخوای که عاشق معشوقه اون باشی چون معشوقه خودت درست ندیدی میخوای دستاتو کسی نوازش کنه ولی به بقیه چنگ میدازی تو خیلی وقته که موردی ولی ناخونات هر روز دراستر میشن اگر نتونی بقیه رو تو خیابون بکشی تو دلت میکشی از مرگ برگشتی به ملاقات زنده ها خونای پدرانت رو تو دستت گرفتی اما برگشتی تا بچه ها تو رو پدر خودشون بدونن اتفاقی افتاده وقتی خواب بودی وقل اصدیت میگه هشت رو میگی چی؟ میگه هشت رو به ساعت پرسیدی بدون اینکه ازش تشکر کنی از راننده اتوبوس میخوای نگه داره که با موتور بری آره یه اتفاقی افتاده وقتی خواب بودی یه اتفاقی افتاده وقتی به چهار سال دانشجویی نگاه می‌کنی یا چند سالی که از کارمند شدنمون میگذره یا اینکه مثلا به تعداد سالهای دوران تعهد بی تردید این جمله بر سر زبونمون جاری میشه که ه چه زود گذشت شاید یادمون رفت ساعتایی رو که منتظر آخرین نمره‌مون بودیم روزهایی که به انتظار جواب گزینش گذروندیم و ماها یا سالهایی که جواب مثبت رو تو رویاهامون میساختیم آره شنیدن تیک تاک ثانیه‌های انتظار گاهی خیلی تخت، گاهی شیرین، خیلی وقتا تاقت فرسا و هر از گاهی انگیز بودن امروز داشتم تو خیابون قدم می زدم مردی را دیدم که تو چشمهاش قیامتی بود رو به من کرد و گفت تا چند ثانیه دیگه بچم به دنیا میاد قشنگ قشنگه، نیست؟ آره، خیلی قشنگ الحق که خیلی قشنگه Hello, my name's Forrest, Forrest Gump. Do you want a chocolate? I could eat about a million and a half of these. My mom always said, life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Those must be comfortable shoes. I bet you could walk all day in shoes like that and not feel a thing. I wish I had shoes like that. My feet hurt. Mom always said it. There's an awful lot you can tell about a person by it. به روزهای و فونی تن به دست و پازدند در لجم بلند شو برو مثل مرد خواهش کن به مبتلا شدند به زن ادامه بگو به ایزگاه نهالو در نقشه اوم به پیرتر شدند در ترند شبیه روح پرزخ در شعای وجود جرقه ای به حضورت بزن ادامه بده به که تو بود به پاسخی که نبود در سالی درونی به چار راه به ساعت به منطقه سوری به کرمه های بدن ادامه بده در ادامه و طبقه یه جدید و پرسیز میریم سراغ یکی از هنرمندای خوبه گشور این شما و این هم جناب علی رزا روشن که افتخار دادن و یکی از داستانای خودشون رو براما کنید پدر که مرد داداش آبتین برادر بزرگم خانه نبود. رفته بود خارج برای درس رفته بود. اما جاگیر شده بود. سالها او را ندیده بودیم. وقتی رفت سی سالش بود. پدر که مرد او چهل ساله شده بود. زنگ زدم گفتم بابا مرد آپتین سکوت کرد. خانش در بندرگاه بود. وقتی سکوت کرد صدای مرغ دریایی آمد. بعد گفت کارامو درست میکنم میام دوباره صدای مرغ دریایی آمد و باز گفت خدامو به تشی جنازه میرسونم گفتم جنازه نداره گریه کردم گفتم جنازهش پیدا نشده باز صدای مرق دریایی آمد صدای باد هم آمد فکر کردم روز است، اما خانهش تاریک است و پردههای های پنجرش از باد ساحلی تکان میخورد گفت میام بریم پیداش کنیم آفتاب به شیشه ساعت دیواری خورده بود و سایه ی ساعت را روی میز انداخته بود. سایه ی ها و عدد ها روی میز افتاده بود. گفتم حتما بیا دلمون برات تنگه. چهار روز بعد زنگ خانه را زدند. آبجی مریم رفت در را باز کرد. صدای جیغش ترساندمان داد میزد بابا بابا. همه دویدیم توی حیات. بابا بود. موهاش آشفته بود، حرف نمیزد، چشمهاش قرمز بود. خواهرم چنان بغلش کرده بود و میبوسیدش که نمیتوانست کاری کند. یک کلمه هم حرف نزد. مادرم صورتش را چنگ کشید، گفت، هوشنگ، هوشنگ. و پرید بابام را بغل کرد و دست صورتش را بوسید. بابام باز هم حرف نزد، فکر کردم شکه شده است. چشمهاش سرخ و خون گرفته بود. بی اشک میریخ. میریخت بردیمش خانه خوشحال بودیم که زنده است توی آش از خانه پشت میز نشسته بودیم بخشی از سایه عدد ساعت دوازده روی رومیزی سفید و بخشیش روی سینه بابا افتاده بود سایه اغربه سانی شمار از روی سینهش میگذشت که نگاه هم کرد چشمش جوشی مادرم چای آورد استکان چای را گذاشت توی سایه پرنور شیشه ساعت که روی میز می لرزید. نور آفتا به استکان چای افتاد. بابا هنوز ساکت بود. مادر گفت. گفتن فقط پنج تا جنازه مونده همه مصافرهای هواپیما تیکه تیکه شده بودن. اکسا رو نشونمون دادن. و گریه کرد. صدای تیک تیک ساعت آمد. ادامه داد. چایی بخور. بابا به مادر نگاه کرد. خم شد روی میز دست مادر را گرفت و با انگشت پشت دستش را نوازش کرد. عشق از چشمش افتاد روی سایه عدد دوازده عشق در بافت رومیزی پخش پخ شد احساس کردم چوب میز زیر رومیزی خیست شده است بابا گفت من بابا نیستم مامان. آبتینم و سرش را پایین انداخت مادر دستش را پس کشید همه احساسها ها عوض شد شرم از خیال های شرماور جای عشق را گرفت فکر کردم اگر آبتین نمیگفت من آبتینم با مادر روی تخت می رفت و پدر ما می شد کاش نمی گفت آبتین است مادر دستش را پس کشید سایه اغربه دقیق شما روی استکان و چای افتاد کسی حرف نمیزد از آستین کت داداش آبتین صدای مرغ دریایی می آمد منو اونجا کاشته بود هرچی هم زعنگ می زدم بر نمی داشت اسمثاب دلیبر میشدا ولی جواب نمیداد وایبرش هم نوشته بود آنلاین زیر آفتاب منو کاشته بود هر کمم از اینجا رد میشد تیکه میداد ماشینا ماشینا از اون سمت خیابون بوق میزدن منم هی گوشیم دستم بود زنگ می به صد بار زنگ زدم اصلا این پسر با خودش نمی اون ساعت روز من زیر آفتاب اونجا کاشته همه کارش همینجوریه مسئودیت می که. حواسش به سال کاری که شده نمی‌فهمم. اون آدمو چک می‌کنه. یکی نیست بگه مگه وظایفتون پی رو انجام برگشتم. دادیم که توقع دارین آدم وظیفه‌ش رو انجام بده. مم. گفتن نامه بگیری بعد گرفتم. گفتن بعد کنکور، کنکور دادم، برو خودشونم نمیارم. بعد تازه آدمو با کسایی مقایسه میکنن که شاخ درمیاری میشنوی میگن مگه پسرموت ماشین داره. ده بابا اون رفته دانشگاه آزاد، کلی باید شهریشو بدن. تازه طبقه بالای خونهشون هم کمپلت دادن به این یه ذره هم نگه آدم حسابش دستش میشه. ستوم هم پولشه یارو هنوز دو ساله نیومده با که پایینتر نشوندنش رو میز رئیس داره بعد من ده ساله تا دیر وقت میمونم کار میکنم ترفیه خبری نیست اضافه کاریم هم کم رد میکنم آدم باید به چه دلخوشی کار کنه امروز رد شده سرشو بالا بعد به منشیش گفته به من برسونه که ممکنه بفرستتم یه حوزه دیگه رفتم ازش بپرسم به چه دلیلی آخه منشیش نزاشت برم تو گفت الان کار داره بشینیم تا وقتی کارشون تموم بشه یه ساعت منو پشت در نگه داشته بعد که به منشیش اصرار کردم دوباره بهش میگه مردی که میگه الان وقت ندارم فردا بیاد آدم نباید انتظار داشته باشه بعد از ده سال خوش خسمتی به جور باش نشه درن یوربه خونه داره خاشک میشه باشه سب میکنیم تا دو تیر تا هیفته تیر اصلا تا هر وقت ما دهش هستی ها انتظار خوب بلدیم صرف تا صدشو رفتیم چند دو اصلا رسم زندگی همینه همیشه باید منتظر چیزی بود این بود اپیزود دوم از فصل یک رادیو هشدارباش اپیزود بعدی ما هشدارباش تابستون است دو هفته دیگه منتظر ما باشید و ارغوانی بمونید و امیدوار و تمام